حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای روز روزه بهتر بلک هوادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با اش دل ببندید <تصفيق> اجوا که دلب سبز دچیده توی دنیا از موج شادی فردا فردا. توی دنیا از موج شادی تا فردا فردا. سلام علیکم من فرشید منافی ام رادیو پس وردو صدا عجیب بود نه بیرون بودم هنوز تو صدیو نایم دادم تازه رسیدم موزیک برو موزیک رو برو نفس هم چه <متصفيق> خبر ها خوبه این خوش این سلامت این همیشه خوبه عرضم به حضورتون که امروز ما میخواییم که در مورد دلایل سرانه مطالعه پایین کتاب توی ایران صحبت کنیم و با این موضوع بحث کتاب و کتاب خونی رو ببندیم به پی کارش دیگه بله امروز میخوایم یه ریشه آبی بکنیم. ببینیم واقعا درد ما ایرانی ها چیه کتاب نمیخونیم در درس امروز سعی داریم به سوال برنامه خودمون جواب بدیم کرد شما پرسیده بودیم اوته که بتونیم و جواب قابل قبولی براش پیدا کنیم. پس سلام مخصوص اول برنامه خدمت همه اونایی که با هزار بدبختی این شؤله پت پت کن رو به خاموشی کتاب و تو ایران روشن نگه داشتن. به اون کتاب فروشی هایی که میدونن اگه مغازه رو تغییر کاربری بدن و بکننش مانتو فروشی مثلا ده برابر سود میبرن ولی صبح به صبح به عشق کتاب و سر و زدن با آدم های کتابخون کرکری مغازه رو میدن بالا واقعا دمتون گرم پس برو بریم سامی و شهرام که امروز جواب خیلی سوال رو باید پیدا کنیم برو بریم <تصفيق> میخواستم برای کتابی که خیلی دوست دارم بگم بابا. یکیش کتاب مرد بدون وطن ونگات اون یکی هم دایرت المعارف شیطان مال امروز بیرز که خیلی هم با حال و خوبند همین دستتون درد نکنه خدا شما دست شما درد نکنه این دایرت المعارف شیطان و هستمایه فرهنگ دایرت المعارف که مثلا معنی واقعی واجه ها و کلمه ها رو نوشته بعد یه جوری خیلی بدبینانه و البته طعنه آمیز و اینا است دیگه مثلا جلوی واژه متأسف نوشته کسی که با سرسختی و جدیت به عقیده‌ای که من مخالف آن هستم چسبیده است یا مثلا جلوی واژه تبریک نوشته حسادت مؤدبانه یا برای واژه تولد نوشته اولین و هولناک‌ترین بدبیاری این جوریه خلاصه دیگه این کتاب یا جلوی کلمه با ادب فهم کنید چی نوشته با ادب نوشته کارکشته در فند و هنر ظاهرسازی حال من که همهن دیگه نمیتونم براتون بخونم دیگه خودتون بخرین بخونین دیگه مرسی بابا تو معرفی او یکو اویه، اوه او, يه. أو يه. بابا ama به voice منتظر OS من وایم نیستم منتظرش من هیچ چی نمیتونم بگم تا OS نیاد من امکان نداره برنامه اجرا بزن جلو بزن جلو آها آها فکر فرم داره میاد OS آ آ خیلی متشکرم از آقای اوهییس توی نمایشگاه مطبوعات امسال خانم آقای این دختر خانم آقای به سراب خانم فایزه هاشمی توی جلسه پرسش و پاسخی شرکت کرده بودن یه جا یکی از حضار به نمایندگی از امت حزب الله سوالی رو مطرح میکنه مبنی بر این که چرا با وجود تاکید زیاد علمای اسلام و رهبری مبنی بر این که خانم ها به استادیوم نیان و خوب نیست و اینا خانم فایزه همچنان روی این مسئله پافشاری می‌کنه فایز جون تو جوابش اشاره کرد به مسابقه والیوال ایران و لایستان سال گذشته که سفارت ایران زن و کارکنان کارکنانش فرستاده بود ورزشگاه و هی تلویزیون همجوری هی از هجاب کامل اونا نمای نزدیک نشون میداد بعد گفتش که بله خود کیفیت ارزش داشت که داشت بده بعد گفت چطور خارج از کشور ما میتونیم به مسابقه ببینیم ولی داخل کشور حرامه خب بنده خدا راست میگه دیگه اگه مشکل مربوط به فحاشی آقایونه و معتقدن آقایون در حضور خانوما همچین به شیر سماور و این مسائل پای بندن که خب عزیز من بازی‌ها رو یکی در میون زنون مردونهش کنین اه. به قول فایزه خانوم مردها بی اخلاقی میکنن خانما رو تحریم میکنن نریم استادیوم بله مردابی اخلاقی میکنن خانما رو تحریم میکنن نریم استادیوم والله به خدا بعد ادامه هم برادر بسیجیمون از ایشون در مورد نقششون در فتنه پرسید که ایشون این جواب رو دادن نظر من فتنه یه دوکونه یعنی گروهی واسه که از بیان فتنه از برخورد با فتنه من سعادت و این دوکون رو ایجاد کردن برای حفظ خودشون و برای منافع خودشون بله از نظرشون ایشون فتنه یه دوکونه دوکونو خیلی خوب اومدنا فقط بعد باشون یادآوری کنیم که الان دکون جدید اومده دو نبش بسیار بهفروش اسم دکونش نفوذه دیگه فتنه داره یواش یواش تعطیل میشه دیگه دکونش دیگه تا ببینیم دکون بعدی که میسازن اسمش چیه و به کجا بنده دیگه بعد oh yes. oh yes. oh yes. او جون اکبر جون مبالغ و زوتر و صدای دخترت هم پخش کردیم ها نگی چرا پخش نکردی برید با مطلیم عین چی اون میلیارد میلیارد دولار رو بفرست بیاد معطلی کار داریم خیلی همه چاله ها رو کندیم براش فرشید مشکل ما جا. ایرانی ها گوگله بابا هر چی از همون میپرسند بلدیم میدونیم طرف سوال ازت میکنه سوالش جواب میدی بعد میگه میدونستی من خواستم ببینم در چه ساعتی میدونه چقدر مم. بابا نمیدونم چرا گوگلی همه هزینه میکنه بیاد سروراش واس کنه به هر ایرانی هر ایرانی یک سرور گوگل بابا دیگه از سر تو دیوار زدن گذشته دیگه سردرده سردرده بدون قرص بابا واس کجا میدونی واس نکرده حالا این واس کرده چرا انقدر سرورهای گوگل رو محافظت میکنن اجازه نمیدن کسی بره بازدید کنه به خاطر اینه که چهار تا از جوانه ایرانی رو گذاشتن از این سیم و لامپ رو نمیدونم تشکیلات اینا بهشون وز کردن دارن به امان سیرور استفاده میکنن الان شما هرچی بزنید تو گوگل زیر دو ثانیه جواب میده همین خودمونیم دیگه؟ بله خب دوستان عزیزان خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسرها خدا رو شکر ما تو مملکتمون سیل و زلزله و طوفان و گرد و غبار و از این چیزا کم نداشتیم الان پدیده فروچاله هم اضافه شده بهشون فروچاله یعنی چی عرض میکنم یعنی اینکه شما داری رو زمین را میری یه زیر پات فرو میره زمین صاف تبدیل میشه به یه چاله تو مایه‌ی چاه الان آخرین و گنده‌ترین نمونه این پدیده یکی از روستاهای های تو استان فارس دیده شده اونم وسط یک باغ انار اونم به وسعت 500 متر به امق 100 متر خیلی ها گوش کنید ببینید چند نفر از احالی دارن چی میگن به خبرنگاری صدا و سیما درباره این پدیده فروچاله اممم من از دور دیدم یک چای بار شده من از خدا 87 سال عمر گرفتم ولی هیچچی هنوز ندیدم احتمال این که تعداد این فروچاله‌ها زیادترن بشه هست حتی ممکنه زیر بعضی از روستاها و تاسیسات و حتی جاده‌ها هم وجود داره که خطر جانی هم مردم رو تهدید می‌کنه من به 7 ساله من یک تار از زمین کشاورزیه ما ترک داشته و نشست کرده هیچ گونه اقدامی هم از هیچ گونه ارگان دولتی صورت نگرفته و قابل هیچ گونه کشاورزی و کشتی هم نمی‌باشه واقعا چه انتظاراتی از مسئولین بیچاره دارین شما عزیزان مناخه مبارزه با همچی همه نیاز به کار داره نیاز به دانش داره نیاز به تلاش داره تازه عزیزان باید از اتاقشون بیان بیرون به داد شما برسن شما خودت بودی ترجیم میدادی تو اتاق گرمانن میوه پوست بکنی شیرینی بخوری جلسه برگزار کنی یا اینکه یعنی بیای تو بر رو بیابون با فروچال مبارزه کنی ها انصاف داشته باشید خب دیگه بیچاره مسئولین به امام فرشید منافی و امام شده های پس فرده ای راجع به این کتاب که گفتی سانسور میکنن چاب چاپ نمیشه یه ادعا از این موضوع سو استفاده میکنن کنن یعنی میونه کتابایی که اصلا واقعا محتوای خوبی نداره رو چاپ میکنن آدمو به درد سر میندازن چند وقت پیش من خودم خیلی اهل مطالعه منطق علم و فلسفه هستم من یه کتابی گرفتن بله. در مسیر درست کردن شراب ناب شیراز که متاسفانه سرکه شد این مسائل رو به وجود میاره که علیرضا مظبوشنو هم هوا خیلی خوبه. به به، با که خوبه اونجا. آخه علیرضا جان شرابو کتاب نمیشه درست کرد که بعد انگور با انگور فرق داره، با هر انگوری نمیشه شراب شیراز درست کرد. شما واقعا اگه اهل علم و منطق و فلسفه باشی بعد بری پیش بزرگان این فن، دوزانو به زمین بنشینی، ازشون خواهش کنی که طرز تهیه شراب شیراز رو بهت آموزش بدن. و هر روی کتاب آخه کی شراب درست کرده شما دومیش باشی. نمیشه. سخته آقا جان، سخته. آقا دیروز من چی گفتم گفتم تهران فردا شب بارونی میشه یعنی امشب شد یا نشد شد من یه چیزی میگم همجور از رو هوانه میگم که یعنی از رو هوا میگم ولی نه از رو اون هوا نمیگم میگم یعنی حساب کتاب داره بر. این شراگیم بنده مثل کوپرنیک شب و روز توی یه چیزی مثل رسط خونه داره رو نقشه های هواچناسی کار میکنه الکی نیست که این بارندگی ها حالا همینجوری ادامه داره تا فردا شاید سمت آزربایجان و اردبیل و اونورا تبدیل به برفم بشه بعد دوباره از پنجشنبه. یعنی دو روز دیگه آره از پنجشنبه فردا نه پس فردا ها کم میشه جمعه دیگه خبری نیست یعنی از همین فرداام دیگه شما میتونین جوجه موجا رو بخوابونین تو پیاز و زعفران روغن زیتون و اینا تا جمعه قشنگ بره می‌خوردش و جمعه سیخ ها رو برداریم بزنیم به دل طبیعت جای ما رو خالی کنین اینجا که دیگه طبیعت مبیات تعطیله دیگه آره تعطیل دیگه کو رفت و بعد عید اگه تازه خوب بشه تا که با تو هم دنیا زیبا تر میشه از روی وقتی که میمونی پیشم هر غزه عاشق تر او تو قلبم میمونه آروم می میکنه هشته ماهم روز شنبه 26 آبان 1394 در برنامه 933 رادیو پاسوردا میریم سراغ مطالعه و ایرانی‌ها بی‌علاقگی وصف ناپذیر یک ملت به پدیده ای به نام کتاب. پایونیجی شماره گی 933 بدانید و آگاه باشید که هرچند ما ایرانی ها بسیار بسیار مردمان کتاب نخانی هستیم اما همیشه در ناامیدی بسی امید است و همه ما از همین امروز میتوانیم با کنار گذاشتن و پس انداز بخشی از پول چیپس و ماست و کافه گلاس و سینما رفتن در ماه خودمان را به کتاب خریدن وادار کنیم و برای نخوندن آن کتاب هم فوشای بد بد بگذاریم تا به خواندن آن مجبور شویم هر چند که در نهایت ما از بسیار کتاب نخوانندگانیم ام زون برای همه چیز و همه کس پول‌دارهای به بحث شیرین کتاب که میرسه بیپول پول شده های. کلن برای فرار از مطالعه دارنده انواع بهانه‌های رادیو پس پاپ اما تاثیرپذیرترین کتابی که تو زندگیم خوندم که کلا زندگی و تفکراتم رو عوض کرد این کتابی بود به نام تولد دیگر اثر دکتر شجاع شفا واقعا کتابی هستش که من به همه توصیه میکنم قربانت خدا فقط خیلی ممنونم از پیشنهاد کتابتون ممنون از همه پیشنهادهایی که این هفته راجع به کتاب های مختلف و با خاصیت ترین کتاب هایی که خوندید دادید خیلی هاش رو نتونستیم پخش کنیم خیلی خیلیاتون کامنت داده بودید بعضیش رو بخونیم بعضیش رو وقت کنیم امروز میخونیم و عرض بزرگتون که امروز راجع به مطالعه و ایرانی ها و این بی علاقهگی وصف یک ملت به پدیدهی به نام کتاب صحبت کنیم کجا میایی؟ کجا می آیی؟ کجا می آیی؟ دوستمون داشتن می اومدن یکی از دلایل پایین اومدن یا بهتر بگیم سقوط سقوطازاد سرانه مطالعه توی ایران رشد و همگیر شدن استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی یعنی اگه زمانی مردم کتاب دست می گرفتن با حوصله و لذت و وقت می زدن جای های جالبه شما هم مثلا با ماژیک هایلایت می کردن و اوگاهی یادداشتی برمیاشتن و لابلای های کتابه چیزایی می نوشتن وین الان دیگه چون چیزای دیگه کم کم به تاریخ بیوسته. یعنی الان مردم یا سرشون تو موبایل چم دارن تو تلگرام و وایبر رووااپپ پای ها برا هم دیگه جوک و عکس آین یا دائمان در حال سکرول کردن و لیس خوردن از بالا به پایین توی صفحه های مجازی هن صفحه صفحات مختلف مجازی برای همین مقدار مطالعه کم نشده یعنی ماهیتش تغییر کرده یه زمانی ملت میشستن با حوصله اون لذت مثلا ده صفحه توصیف از مناظر طبیعی و زندگی روسلایی دهاتای روسیه رو فرض بفرمایی تو رمان دون آرام شلوخوف میخوندن حال میکردن استاتوس بالای دو خط خطو ملت رد میکنن نمیخونن اصلا حوصله ندارن بعد همجوری چشوب وق زده روزی 10 ساعت پای کامپیوترن یا سرشون تو موبایل دائمن دارن اسکرول میکنن میام بالا میرم پایین نه الان مثلا همین کار عل جلال عل جلال روبرمن دقیقاً داره همین کارو انجام میده همش نشسته نشسه من وقتی من تو استادیان دارین نشسه کلج تو موبایل هی بالا پایین بالا پایین لایک بزن لایک بگیر فلان از این همه هم یعنی خیلی ها اینجوریان یعنی اینجوری نه خودمون هم همینی. هر کی ندونه فهمی کنه مسابقه ی چیزیه مثلا هر کی زودتر مثلا تای فیسبوک برسه بهش مدال میدن اصلا ته داره این همه اسکرول نم احتمالاً ارزشمندترین چیزی که آیدمون میشه اینه که مثلا سارا بی اچ امروز ماشینشو خوابوندن یا فلان اتفاق فلان جا افتادو فلان بازیگر فلان عکسو گذاشته همین اطلاعات کپسولی فاستفودی به در نخور با ولع میخوریم میولیم دیگه و با ادبیات با ادبیات و با کتاب که غذای ارگانیک و مغذی روح و فکر ما سازگار نیست چی گفتم جمله‌ای گفتم اصن واقعا تاریخی بنویسین یه جا یادمون نره فقط آیه دوست یه حرف بامزه می‌زاد میگفت نسل الان دیگه عنوان حتی عنوان کتاب در جستجوی زمان از دست رفترا مطلله نمی‌کنه تا ته خونه وسطش بی خیال میشه یعنی در جستجوی زمانه که می‌بینه دیگه بیخیال میشه چه برسه به خود کتابش که هفت جلده راست میگفت دیگه بیچاره مارسل پروست همگیان منو از تهران صد تحویل بگیرین دست جمعی کارتون درسته میخواستم بگم که دلیل کتاب نخوندن ایرانیان بله. به خاطر اینه که به یه سطح از روشنفکری رسیدن مهم. که کتاب نمیخونن که کتاب نخرن که درختا قطع نشن چرا ساده میبیچونی می‌میچونی انقدر یه هفته برنامه نداره که خلاص جدی میگی بعد همه مردم وقتی میرن پیکنیک چیز میکنن پیک میکنن میرن تو طبیعت و پارک و اینا که درخت از ویشو در میارن جوجه کباب درست کنن که. نه به ما نگو دیگه. ما خودمونم از همین مردم این ناسلامتی خیلی متشکرم ولی بر حال هم نظری بود این هفته ازتون پرسیدیم بهمون بگید چی شد که سرانه مطالعه ایرانی های قدر پایین و گفتیم بهمون بگید با خاصیت ترین کتابایی رو که تو زندگیتون خوندین به ما. معرفی کنید تا زکات کتاب خونیتونو داده باشید احساسی... بریم ببینیم که چه خبر بر بچه ها ایمیل و اسمیس و اینا فرستاد ایمیل فرزاد از تخت جمشید ایمیل داده علل کاهش خرید, خرید و قریب بودن کتاب در ایران عدم اعتماد خواننده به علت سانسوری که اعمال شده فرزاد گفته آرش از استرالیا گفته سلام فرشید ممنونم از برنامه خوبه دست همه خصوصا جلال درد نکنه در مورد موضوع این هفته من متاد هستم خیلی وقته میخوام بهت پیشنام یعنی متاد در واقعی متادی یا متاد برنامه یا متاد کتابی من نگرفتم خیلی وقت میخوام به پیشنهاد بدم که یه کتاب رو اجرا کنی اودیوبوک کتاب گویا استعدادش تو خونته راستی به نظر یک کسی که کتاب گویا گوش میکنه کتاب خونه میدونم نمیخونه ولی برایش میخونن خوب مخلصیم آرشت از استرالیا خیلی ممنونم مخلصیم آرشت جون آره چرا که نه حتما من این کار میکنم خیلی, به خیلی وقت اتفاقا تو این فکر هستم منطقه ها میدونی نمیدونی آدم نمیدونه کدوم, کدوم کتاب انتخاب کن انقدر ما کتاب زیاده نمیدونه کدوم کتاب و انتخاب کن وقت کتاب طولانی هم بخواهی بخونی که کسی حسن نداره گوش کنه وقتا کپسولی باشه که مثلا گوشش کنی ممنونم از پیشنهادت. لادن تو اینستاگرام گفته سینوه پزشک مخصوص فرعون چهار اثر از فلورانس سکاولشین این سینوه هم از اون کتاب هاست حتی اون تیپ آدم هم که عمران علی کتاب خوندن باشن این سینوه رو تو یه دوره ای از زندگیشون بالاخره خوندن ها به خود ایرانی ها آدم سینوه دیگه محصا گفته کتاب خوندن خیلی خوبه ولی من نمیدونم چرا حسش نمیاد که بخونم و حس کتاب میدونی یه جورایی که باید تلاش کنی دیگه زیر دندون اینجوری باید ای مزمزه کنی ببینم مثلا شروع کنی یه کتابی رو که دوست داری بالاخره کم کم حسش میاد با فاری فری پارس فاری پارس کتاب که خیلی دوست داشتم اتحادیه کتابی که خیلی دوست داشتم اتحادیه ابلهانه به همه پیشنهاد میکنم بخونن بعد منم تعریفش رو خیلی شنیدم مرسی از پیشنهادتون کتاب باق بلور محسن مخمل باف که سالها پیش خوندم یکی زیباترین کتابایی که تا حالا خوندم نسیم این پیشنهاد رو داده و آرمیتا هم گفته پشت هر آدم موفقی یه گوشی ساده وجود داره که به نت وصل نمیشه والا اینم نظریه پشت بعضی آدم خیلی خیلی موفق میگن حتی همون گوشی هم وجود نداره اگرم باشه اغلب خاموشه بعد پسورد ما at ایمیل ماست 20420 60387 4150 و 20420 73359 5555 55 شماره های اس ماست در فیسبوک گوگل پلاس سام کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید شماره وایبر واتساپ و تلگرام ما 20420 602338377 در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید و با ما باشید اونجا تلفن های پیامگیر ما هم 20420 22, 11, 24, 133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرند دوسف 420, 226, 21, 70, 39 بیا, بیا می می خوام تا را بیا بیا بیا, بیا, بیا کامی ده، کدام نتی کامی خانوم و دختر خانم های عزیز اگر همیشه آرزو داشتید به استادیوم بروید و مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کنید اگر همیشه به امکانات و شرایطی که پسرها در جامعه دارند قیبسی خورده اید اگر از پیجاب اجباری و لباسهای گل و شد و آزار و اذیت خیابانی خسته شده اید دیگر نگران نباشید شرکت محسبیل مفتخر است با سالها تجربه در امر گرین و تراحی لباس ظاهر شما را به صورت صد درصد تزمینی مردانه نماید مواد و متریال استفاده شده برای تغییر ظاهر شما به اندازه ماندگاری دارد که شما با ظاهر جدید نه تنها میتوانید به استادیوم بروید بلکه قادر خواهید بود سربازی رفته و بدون هیچ مشکلی دو سال خدمت نمایید استفاده از انواع ریش و سبیل طبیعی و مصنوعی با دو روش کاشت دائمی و نیز نصب با چسب قطری با مندگاری بالا و روی صورت شما استفاده از پرمون های مردانه برای درآمدن طبیعی در نواهی مختلف بدن و کلوفت شدن صدای شما آموزش برخی رفتاهای افتدایی مردانه شامل شیوه راه رفتن خاراندن نوایی مختلف بدن و استفاده از عبارات و اصطلاحات مردانه و امکان گرین و طراحی لباس شما بر اساس تیبهای جاهلی، جوادی، مهندسی، اسپورت و سایر تیبها و فیگورهای مردانه مورد علاقه شما با شرکت محسبیل همین امروز تماس بگیرید تا زمن حضور آزادانه در تمامی مکانها به کلیه یه تبعیزهای جنسیتی علیه خود پایان بدهید محسبیل در خدمت دختران ایران زمین من گل گل گل گل گل گل فری برد سلام آقا کوبیدی ما بازم هم ششایی شدیم گم چه خبر از بازی رو آره. هوواشی؟ سلام خوبی آره خیلی خیلی خوب کویدیم آره سلام سلام به همگی گی هم بررزشی که برد امروز به دلشون چسبید فکر کنم فرشی تلافی اون همه دردسر رو کاشکنی رو درآوردم بچه ها شش تا گل جور و جور زدن گلای اول و سوم خیلی به من چسبید مخصوص گل سوم که رامین ایان زد در حد چلاس مسی رونالدو بود خارجی خیلی خارجی خیلی واقعا قشنگ بود هرچند که گوام لغمه گلوگیری نبود واسه تیم ایران اما عموجوشو گفتم یه برد خوب و دلچسبی بود واسه هوادارهای فوتبال دستشون دارد نکنه خسته نباشن بچه‌ها فریدورس الان وضعمون توی جدول چه بازی بعدی چه روزیه با توجه به نتیجه بازی ترکمنستان و عمان که دور از انتظار بود اومان باخت عمان نزدیترین حریف ایران بود تو جدول به ترکمن ها دویک باختن عمانیا. الان ما با چاده امتیاز و معدل گل خوب به اضافه هیگده اولین که گروه مون بازی بعدی هم میره تا پنجم فرودین سال دیگه با هندر اما فرشید بازم امروز یه بساتی داشتیم از دست این برادرهای یما در طرش مستقیم که یه ترساتی بود گلزن مثلا گل پنجمو زده بود میخواست شادی کنه میرفت گل اولو نشون میداد اصلا بود پیمان یوسفی گزارشگر بازی هم صداش در اومده بود و وسط بازی اینجوری گفت برحال از عسخایی میکنم ظاهرا دوستان مجبور میشن که لحظه به لحظه از تصاویر جایگزین استفاده بکنن و به همین خاطر برای بارهای متمادی شما میبینید که یک صحنه خاص رو دوستان بل اجبار به نمایش در میارن چون نمیتونن یه چیزهای دیگر رو نمایش بدن خب امیدوارم این دقایق هم هرچی زودتر به پایان برسه <تصفح> که این سختی کار دوستانمون هم تموم بشه باز <تصفح> دست پیمان یوسفی درد نکنه قبلا مورد داشیم گزارش کرد حتا این تصاویری تکراری هم هی برامو گزارش میکرده حالا باز پیشرفت کردن آره. اینجوری. آره. فریبرز واسه آره. کیروش گفته میخواد استعفا بده درسته؟ تو خبرها بود دیشب هر تو حتی تو برنامه 90 عادل فردوسی پور هم بهش اشاره شد حتی که ابشین پیروانی مدیر تیم ملی اومد و تکلیف کرد اما خود کیروش امروز تو مصاحبه بعد از بازی با گوام یه جورای مبهم جواب داده به سوال باز در این مورد گفته که تو جلسه روز پنج تو ایران تو فدراسیون با علی کفاشیان تصیم نهایی رو در این مورد خواهیم گرفت. بسیار خوب یه تلفن ورزشی کتابی هم داشتیم مطالعه یه کتابی رو پیشنهاد کردن این هم بشنبی. سلام فرشی جان و فریبرزی عزیز این فوتبالیاست فوتبالی کسی که ساکت و الکس فرگووسن رو دوست دارن کتاب باگرافش خیلی خوبه من خودم آرسنالی هم ولی به الکس فرگووسن خیلی احترام میذارم به خاطر مربیگرری و کتابش حتما پیشنهاد میکنم. بله پیشنهده کتاب زندگی نامی الکس فرگووسن رو کردن اونایی که علاقه اتفاقا اتفاققا سفارش فرشید برام بیارن و شروع بکنن به. به. بسیار ممنون ازت غریب با باد خدافظی می‌کنیم تا هفته‌ی آینده شنبه تا شنبه‌ی آینده خدا همگی ایزی <متصفح> Trash. You're tossed it in the trash. You're باب سلام بیسوه کسیه سه شب را زمن ابراز خوشحالی از ششتایی شدن دوباره گوام توسط تیم ملی فوتبال ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز میلماوی ازهار نظر فرمانده پلیس ایران مبنی بر آمادگی کامل این نیرو برای برخورد با حملات احتمالی داوش و توصیه ناظران به وی که حاله تور خدایین چند وقت به نیروهاتون بگین تو مرز چورت نزنن عواظ شون باشه وضع خطریه دستگیر شدن مدیر کل اتباع خارجی ایران شهر توسط سپاه و نظر فعالان عرصه دستگیری که این روزها سپاه همه را دستگیر می کند. شما را چطور؟ و اعلام بی سرماندن اصول گراویان بعد از درگذشته آقایان مهدوی کنی و اسکر اولادی و نظر کابشناسان که با سرم چیکار کردن عوض این گروه تا دلت بخواد ته داره؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با همکابر خوشحالهانم بلی بوی با سلام بنامه بزرگش های رسیده پس از اعلام خبر نیامدن ایل نینو به ایران تعداد زیادی از جوانان به خاطر نیومدن به ابراز ناومیدی و انزجار کردند این در حالی است که طبق گفته های رئیس سازمان هواشناسی ال نینو بازیگر یا فوتبالیست نیست و یک وضعیت آب و هوایی مربوط به اقیانوس را شامل می شود. ای بابا آقای میکروفون طلا؟ ی خواهر من رفته و داخل آره. گرفته بود واسه استقبال از لینو ببخشی دیگه من از طرف اقیانوس آرام از شما اصخایی میکنم خبرو بکن با بایی ادامه خبر ویفزود خبر نیامدن الینو به ایران را ایشان اعلام کرده است و ادامه داد بنده به عنوان رئیس سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی در سراسر و سر استانها اقدام به مصاحبه در راستای روشن شدن این موضوع کردیم ولی متاسفانه هنوز هم شاهدیم که جو به وجود آمده از مصاحبه های غیر ولی در این خصوص در سطح جامعه باقی است. در همین رابطه یکی از کارشناسان خبرنگار ما گفت، هنوز هم تعدادی از جوانان کشورمان باور نکردند، علمینو یک بازیگر یا فوتبالیست مطرح نیست. و تنها یک وضعیت هوایی طوفانی است مسئولین باید تلاش کنند قبل از اعلام اصلوم این چننیین نسبت به روشنگری در مورد ماهیت آنها اقدام نمایند پایان مشوه اخبار بله همکنون از طریق خطوط تلفن، در خدمت کاشناس مشکل گشایی برنامه برادر مشکل گشا هستیم تا مشکل ما و شما را گشایی نماییم خب به مشکل جان میگم تو خبرها اومده بود که داعش و این گروه های تروریستی یه خوابایی هم برای ایران دیدن شما حتما این روزا تو وزارت دارید حسابی روی این مسئله کار میکنید بله بالا بالا سلام بالاخره سربازان بله. گمنام که وظایفشون رو نکردن مسائل برخورد کنن که محمد الله تعالام موفق بودند. آه بله بله. خب به فکر می کنید کدوم گروه های تروریستی پشت سر این تهدیدها هستند مشکل ز؟ مسئله اینه که خب سیاستی که ما در داره می نکه. بله. وقتی اتفاق میافته بعد بر اساس شواهد و مخصوص دستورات که. سادر میشه تصمیم میگیریم که این اتفاق کدام ای خیلی نگرفتم من مشکل جنرم میشه مثال بزنید چه مفه بله مثلا اگر های. خاطر مبارکتان باشه در سالهای گذشته خب. چند مورد فرار دانشمندان هستهی در کشورمان داشتیم که خب بد که اتفاق افتاد ما بر اساس مساله نظام تصمیم گرفتم که آمل این ترور ها اسرائیل غاستق باشه دیگه بله. خب یعنی الانم هم وامی شید اتفاقی بیفته بعد تازه آملش اعلام میکنی داره میگم خسته نمیشید چه مشکل یه این همه کار میکنید دیگه در آه. هر شورت وظیفه ما اینه که در برابره اینا تو تا رک اصل عملشون بده نمیگم ما خدمتگزارم مردم عزیزمون هستم عزیزم؟ میگه بعدا دارم تیک چه میندازم بهتر اصلا نمیگه خوب یعنی چی اصلا کار شما اینه که پیشگیری کنید از این اتفاقاتی حالا اون گافاتونی که داد اینه اون دانشپندای میچاره کشته شدن و اینا اونارو داری به رخ ما میکشین اصلا صدای ای. شما رو ندارم اصلا میگم درود بر خامنه ای مرجع ضد ولایت فقیه میشوی بلا بلا بلا الو. اجازه بده الان با هم شنید به صورت همه هنگ شعار بده بالا خیلی هم, خوب شنیدم. هم از کارشناس ما بله آقا بله نخواستی بله شنواندگام نعزیز زمن پوزش از اختلاف صورت گرفته در گوش کارشناس برنامه تا او شبی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدا می سماره. باشید جون سلام ما یکی از تفریهاتمون تو زمان دانشجویی این خوب. بود که شباب و بچه ها می شستیم توضیل مسائل می زشتیم. جلومون شروع کردیم تفسیر کردن و خوندن اینا خوب باله. که تا خوب قربونت تو سامان هستم خدافر هسته نباشی سامان جان و دوستاتون همه با هم همین یه مقدار سرانه مطالعه مملکت هم شما اینجوری هدر بدین چرا بعضی من نمی چرا اینجوری بله. بعد از کیکی یکی دیگه از دلایل کاهش سرانه مطالعه توی ایران میگن گرفتاری مردم و گرونی کتاب و البته همین کیکی بام بام اوفی اوفی اینم جزوشه اینایی که میگن کتاب توی ایران گرونه اینا رو بعد ارجادات داد به های پشت جلد 20 دلاری و 30 دلاری های متوسط و نه چندان زخیم تو خارج از ایران یعنی حتی اگه بگیم دلار رو نباید با ریال مقایسه کرد در مقام مقایسه مثلا ارزاقی هم برحال قیمت قیمت یه کتاب یه به قیمت قیمتی کتاب تو ایران تقریبا معادل قیمت یه وعده غذای فاسودی دیگه خارج از ایران قیمتی کتابی تو مایه های 5 وعده غذای فسفودی میشه بخوام اونجوری حساب کنیم سه وعده حالا تو بگو 4 وعده یعنی گرونی اصلا بهونه خوبی نیست منظورم اینه یعنی به بهونه بهونه رایج دیگه هست در این مورد که ای آقا ای آقا, ای آقا این مردم ایران گرفتارم بابا این هم یه بهونه ایه که میارن دیگه یه جوری هم میگن مردم ایران گرفتارن انگام مثلا مردم فرانسه شب تا صبح بیکار نشستن تو خونه لم دادن رو مبل از دور بیکاریه سرانه مطالعهشون ده برابر ماست بعد اگه مردم گرفتارن این حجم عظیم مطالب وایبری و فیسبوکی و توییتری و جدیدا تلگرامی و اینا اینا کی تولید میکنه نمیشه که واسه کتاب خوندن گرفتار باشیم بعد برای پرسه زدن تو شبکه های اجتماعی روز ده ساعت وقت داشته باشیم اینه که گرفتاری هم واقعا باونه خوبی نیست این درد کتاب نخونی ما ریشش یه چیز دیگه است بله حالا برای این که بفهمیم دلیل سرانه مطالعه پایین ایرانی چیه بعد نیست یه مقایسه بکنیم مثلا قبل از انقلاب جمعیت ایران نصف علام بود دیگه درصد بی سواده و کسی که سواد خوندن نوشتن نداشتن هم خب خیلی بیشتر از علام بود هر جوری حساب کنیم سرانه مطالعه و تیراج کتاب در حال حاضر با توجه به جمعیت و زیاد شدن سواد تیه این چهارده ها خیلی بیشتر شده باشی نسبت به قبل از انقلاب دیگه موتو عملا میبینیم سرانه مطالعه و تیراژ کتاب نه تنها بیشتر نشده خیلی هم کمتر از قبل از انقلاب حتی سال‌های اولی انقلابه پس این وسط یه چیزی غلطه حالا یه عده میگن جمهوری اسلامی باعث بنیان با قضیه است یعنی اولا با سانسور زیاد و ندادن مجوز به کارهای خوب از یه طرف باعث شده که ملت دیگه مثل سابق رغبت نکنن که برن کتابای دستگاری شده رو بخونن از طرف دیگه با عدم حمایت از ناشرای خوب باعث شده که دونه دونه اینا از دور حذف بشن اما خب مسئله اینه که توی این سی چهل ساله توی همین سه چار دهه گذشته خیلی چیزا توی کل دنیا عوض شده نه فقط ایران خیلی از اینترنت و فضای مجازی که حالا راجبش تو همین برنامه حرف زدیم اه... تا سی چهل سال پیش خبری نبود از اینترنت و فضای مجازی و تلگرام و نمیدونم و و اینا که پدیدی ماهواره هم این هم یه پدیده جدید تو این سالهای اخیر معرف حضور همه هست بر اساس گزارش‌های رسیده خیلی از عزیزان غروب که میان خونه ولو میشن جلوی تلویزیون تا ببینن مثلا عشق ممنوع به کجا رسید و زینت نمیدونم با نامزدش به هم زد یا نزد از این حرفا بعد به همین عزیزان اگه بگی بیا حالا دو ختم مطالعه کن میگن این ای و من بعد برم دکتر عوض کنم چی سرم درد میگه تو دو کتاب می سرم درد میگیره بعد عمر گل لاله کی شروع میشه چشم همچین ده دهم هم میشه آدم کف میکنه. به خدا همون آدم. ولی من خیلی هم آدم کتابخونی نیستم. اما قد نیاز خودم یه وقتایی کتابی دست میگیرم. سرانه کتابخانی کشور رو بالا ببرم. و مخیلی آزی یکی از همکارم. جون به جونشکنی حال نداره یه ورق روزنامه بخونه. بهشم که بگی مطالعه دانش آدمو زیاد میکنه و اینا میگه برو بابا حال داری و سرگرم موبایلش میشه. کلن کلش تو موبایله. بعد همینیشون تازگی چپ میره راست میاد یه جمله از یه نویسنده یا فیلسوف یا سیاستمدار نقل میکنه با اسم کتابشون. دیگه امروز ظهر وقت ناهار که داش فوکو و داستایوفسکی رو به سبزی خوردنی که آورده بود بسکین کرد، تا طاقتم تاخ شد. گفتم مازی جون تازگی کتابخون شدی؟ گفت نه بابا کو وقت کو پول کتاب خوندن مال آدمای پولدار و بیکاره گفتم عجب نظر گرانبهایی اون وقت شما پس چطوری از کتابایی که نخوندی نقل قول میکنی؟ گفت وا شرمین جون یعنی این از تکنولوژی عقبی تلگرام عزیزم یا نه این صفهای فیسبوکی سخنان بزرگان و اینا اسف شو کلی تو وقتت صرف میشه لازم نیست کتاب برق بزنی بعد دوباره کلش رفت تو موبایل یعنی اگه یه روزی بخوان سرانه موبایل خانی مردم ایرانو حساب کنن آزی یک تنه جور آدم از تکنولوژی عقبی مثل من هم به دوش میکشه. یه دفعه این وسط یا نباش همه هنگه همه هنگه؟ گفتم با حاله بذاری این وسط یه هنگیه باش بچه ها میگن باحاله حاله هم با حاله دیگه همه هنگه دیگه باش. آقا ولی من جهتی این داستانش چیه این همه هنگه با کی همه هنگه؟ صرفا برجان این همادیر من بود هم با هم هماهنگی سلام چطوری کامران آقا ماجرا چیه که شبه... به منم بگه چی شده چرا هندی یه دفعه پخش کردن بچا آره این بخش از یکی از آهنگای فیلم هندی پرم راتان دان پایو یا گنجی رو بگیر که اسمش عشق بود که این هفته نه تنها توی هند بلکه تو همین آمریکا هم کلی سر و انداخته یه بار دیگه میتونی اسمش رو بگی از اول تا آخر پریم پریم یعنی اشقی که <تصفيق> راتان دان پایو آها یعنی گنجی رو بگیر که اسمش اشقی میخوای سه بار بگم خیلی پیچیده شد خب حالا چی شده این داستانش چیه؟ <تصفيق> این فیلم که همزمان تو هندوستان و چند تا کشور اروپایی و آمریکا از پنجشنبه پیش نمایش شروع شده تونسته رکورد فروش تاریخ سینمای هندو بشکنه تا دیروس یک میلیون دلار فروش کنه اما فرسونه که تو آمریکا در رابطه با فیلم را افتاده مقایسه این فیلم با فیلم جیمز باند تو جدول باکس آفیس این فیلم هندی رتبه 8امو داره با در اختیار داشتن فقط 287 تا سینما و فروش 2.5 میلیون و جیمز باند با فروش 33 میلیونیش و در اختیار داشتن 3929 سینما به خاطر آی مکس بودن فیلم جیمز باند قیمت بلیطش دو برابر یه جوری میشه البته این فیلم هندی که اگه می‌خوای تو اسمش رو بگی این هفته شماره 1 سینمای آمریکا است پرم راتان دانپایو پرم راتان دانپایو آره این جوریه یه خود بعد پرم راتان دانپایو اینجی جی باز سالا سامته موسیقی چه خبری ناخره هفته حال این رففته از پر فروشن آلبوم ها توی ایران آلبوم کمان به خوانندگی محمد معتمدی بود اما الان داره کار به شکایت و شکایت کشی کشیده میشه چون معتمدی گفته این کار رو که به بازار ماده فقط یه اتود بوده که روی آهنگا من توی خونم خوندم عجب. آهنگساز کار آقای احسان ضبیحی ف برون اجازه رفته مجوز گرفته و کار منتشر کرده. اگه شکایت محمدی به جایی برسه م... معدی به جایی برسه ممکن که آلبوم از بازار جمعش ای بابا تا یه وقت شکایت نکرده جمعن شده. بریم گوش کنیم یه بخشی از این تصنیف کرشمر رو با صدای محمد معتمدی از البوم عبرو کمان ببینیم که چیه ممنونم ازت کامران عزیز بعد خداحافظی می‌کنیم تا شنبه تا شنبه خودت رو تو هم چون صبی یا من شمع خلوت سحرم و بسومیکونو که چون نمی‌سپردم چون این که در دل من داغ زنلف سرکش کشته‌ام نهفشه زار شود تربتم بتن چه در گوشت برآورد تاون مرا داد کشاده ام در چش دیک نظر فکری خود فکر نظر که شد گویمت ای غم افا کنم که روز بی کسی آخر نمیرد دیز سرم آره آره باشه باشه عزیزم ببین من حالا نمیدونم بابا میتونه کاری بکنه یا نها ولی حالا این لیست کتاب ها رو بهش نشون میدم ببینم آشنا ماشنا چی داره دیگه باش قربونت برم آخ ببین حسیده من برم این ددی اومد نه نه من نمی نرکنم اول تو قد کن. کن. کن. کن. کن, یعنی کن تو قد کن نه تو قد کن تو کن دیگه قد کن دیگه یعنی چههی تو با... قد کن تو قد کن در آوردی واسه ما چرا قط خشن شدی شما ای با؟ اجالتم صحبت میکردم از شما بریده دیگه ما گای وقتا جلوی چشمامون را میگیره دیگه خب چه کار می‌کرده پس از عزیز و دلبندم بگو به بابا بگو خجالت نکش بگو چی بابا ما بله. داریم یه سری کتاب از چین باد وارد می‌کنی یارو نماینده شد. گیر داده بله. بهشون که اینا مورد دارن دادی توه چینی وارد میکنه آه. یعنی بشکنه نشکنه چجوری اینو نه بابا دادی کتاب فارسیه ولی بله. چین دوباره چاپشون کرده مفعوم دیدیم سودش خوبه دیگه واردش کردیم دیگه دادی سن هر آره. فرهنگ خیلی خوبه پسر آره حتما اگر چینی باشه خب حالا که جرعت کرده جلوی شما را بگیره بگو ببینم بابا یه یاروه تو گمروش نماینده شده چیه گیر داده به اسم این کتاب ها خیلی بیجا کرده حالا اسم این کتاب چی هست مگر؟ مثلا د... یکیش خاجه تاج داره بله خب اینکه که همینجا توی ایران چپ شده که بابا ددی چرا هی عقب میافتی میگم ما داریم چینیشو وارد میکنیم از ایران خب این اسمش مشکل داره دیگه بر نظام مقدس ما تاج این مسائل دیگر نداریم که آه. همه خدمتگذاران مردم هم به فضل خدا اسباب و اساسیه دارن دیگه خاجد خاجه تاج دار معلومه خ... که مشکل آخ... داره دیگه بابا اسم کتاب رو کتابو چی بذاریم بل... آخه نویسنداش اسمش رو گذاشته خاجه تاج داری در... بیا ما اسم این کتاب ها رو برای شما عوض میکنیم اسم خاجه تاجدار را شما بذار تاجه خاجدار تاجه خاجدار بخ... ای برچه بله دیگه... اسم بحالی خودم به فکرم نرسید دیگه کاری که از دست ما برمیاد خب کتاب بعدی چیه بگو ببینم این یکی دادی یرو به اسم گیر داده بود چرا مگه چی بوده میلان بس... کندرا بله این چه اسمیه ارشاد هم گیر نده من تو را اینطور تربیت نکرده بودم از چون این آدم های بابا... معلومال حالی بکنه؟ این را بکن میلان گل محمدی بدا ببینم اینجوری به ثواب ندهی یعنی تاره. میلان کندرارو بکنیم میلان گل محمدی عجب باشید بله بله دیگه. میلان گل محمدی خب. بله بله. خب کتاب بعدی رو بگو تا ما گرم شدیم دیگه سریع همه رو درستش کن. این یکی هم هست خاطرات روز غمگین قمگین من دردیم نعودو بالله این با... نعودو بالله ای اینا چیه دیگه اینو که اصلا نمیشه کارش کردی دیگه یه کاریش بکن دیگه آلا. باشه دگه این هم این رو, کن. این رو عوض کن اسمش رو بذار خاطرات سیغه شده های خوشحال من یه چیز دیگه شد بخن. دادی جون این ما چ... کاره نداشته باش دیگه مشکل شرایش حل شد دیگه غمگین رو هم کردیم خوشحال که دیگه سیاه هم نداشته باشه ایوال ایوال دادی اما کتاب بعدی ها این چیزاست. دیگه آه دیگه بسته دیگه پسارم خیلی کار فرهنگی کردیم ایمو خسته شدیم دیگه بیا کم مراحب بماس دیگه مونده برحم بی بی بیا بیا دیگه همه حساب دیگه مونده ها بابا کمک بیا دیگه کم... بذار برای بد که من دیگه زنگ میزنم به سردار کتابی مشکل رو حل میکنه دیگه باشه بابا بله. باشه من از کاتاکول میافتم هر دفعه دیگه ببین ددی اخی کاراتو بگی اسم مؤمنن این بدن خسته است که بعد از این همه دیگه. سال خدمت فرهنگی نیاز داره به مالش میم به مال ببینم دل بابا پوگلادے روزنامه, روزنامه, روزنامه, روزنامه امروز با اشاره به وضعیت استفاده از لوازم آرایش در ایران تیت زده بود که آرایش به 10 ساله ها رسید خیلی طبیعی وقتی بچه 6 7 سالش اینجوری حرف میزنه تو ده سالگی باید امارایش کنه. کنه، داره. باشه آره دوست داره. باشه. من دیدم بغلش کرده، باشه، کنم. وطن امروز از قول رئیس قوه غذایی تیف زده بود که دولت مردان آمریکا باید محاکمه شوند. بزنیم به تخت دستگاه قضا و مرحله رسیده که محاکمه مردم عادی خودمون دیگه ارزاشون نمی کنه. دیگه می خوام برن سراغ دولت مرد خارجی بله فرصت امروزمونم تمام و فرصت این هفته قیصر امینپور عزیز چه زیبا سروده شب عبور شما را شهاب لازم نیست که با حضور شما آفتاب لازم نیست در این چمن که ز گلهای پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست خیال دار تو را خسم از چه میبافد گلوی شوخ که باشد تناب لازم نیست بس که گریه نکردم غرور بغض شکست برای غسل دل مرده آب لازم نیست کجاست تو از آفتاب میپرسم سؤال روشن ما را جواب لازم نیست ز پشت پنجره برخیز تا به کوچه رویم برای دیدن تصویر قاب لازم نیست وقت به خوبی دادی کی که تنها شوم می از دوری تا زمین خوردم جوری که مدت ها نشو باشم اسو و جوری سرمستم این تو رو جنود میشه او یان تو غم همون میشه، از هر چی می‌دارم همون میشه، از هر چی می‌دارم همون میشه. شبتون خوش، تا شنبه.